در و همراهان گرامی در صفات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان، هلسو، سازمان اجتماعی سپید و رادیو آنلاین راهپیشم سلام و درود و شما بخیر. و برنامه کسریدارایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان، کسریدارایی را از زوایا و منظرها مختلف به بحث و بررسی می‌گیریم. چشمان انداز این برنامه بررسی کارایی کسریدارایی برای گزار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن افغانستان صلح‌آمیز و مرفه در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابد رابطه میان کثرت‌گرایی و آموزه‌های اسلامی چگونه است چگونه سازگاری میان کثرت‌گرایی و آموزه‌های اسلامی در راستای حل منازعات و رسیدن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه بهره برداری نماییم عبدالقاهر بهشتی هستم این سوالات را با کارشناس علمی برنامه بکن کاش میگیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد محمد عبال احرار رامسپور گنیانگزار معصم مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان پلسو استاد پهندون و پژوهشگر ارشد در امور خوق بشر و اردشای اسلامی است. جناب استاد رامسپور به برنامه کستردگرایی و افغانستان خوش آمد. سلام و درود بر شما آقای بیستی و همچنان بر شنوندگان گرامی برنامه تشکر جناب استاد ممنون از اینکه فرصت در اختیار ما گذاشتیم. جناب استاد بحث از مفاهیم آغاز می‌کنیم به نظر شما کثرت‌گرایی چی است؟ یا اصطلاحی کثرت‌گرایی یا اصطلاحی است که امروزه در علوم جامعه شناسی و در علوم سیاسی کاربرد پیدا کرده و مفهومی ای واجه را اگر ما شما دقت بکنیم از پلورالیسم گرفته شده پلورال که به مانای جمع هست و پلورالیسم به مانای مکتب جمع یا مکتب کسرتگیرائی یا کسرت باوری چند سمتی و چندگانگی تعبیر شده البته اگر ما با فرهنگ اصطلاحات دانشگاهی آکسفورد مراجعه بکنیم معنای پلورالیسم یک قسم تفسیر میکنن که یعنی کثرت گرایی عبارت از زندگی کردن در یک جامعه ای که از گروه های نشادی مختلف و گروه های که زندگی سیاسی و دینی مختلف با هم دارند عبارت میباشد یعنی زمانی که انسان در یک اجتماعی بسر بباره که در اونجا افراد مختلف، جمعیت های مختلف، افکار مختلف سیاسی و عدیدگاه های مختلف وجود داشته باشه و حتی اقلیت های مختلف قومی یا تباره های مختلف قومی با هم زندگی بکنن ایر میگن یک جامعی کستگیران البته در بود دینی هم روی ازی مبحث در گذشته ها کا شده خصوصا در اوایل قرن بیستم دانشمند انگلیسی جان هیک این مساله را مطرح کرده بود که در در دنیای امروزی ادیان مختلفی که وجود دارند گویا همگی ادیان در جستجوی حقیقت هستند و گویا یک حقیقت ورستگاری یا واحد هم وجود داره که تمام این ادیان از راه های مختلف در تلاش هستند که به او حقیقت برسند و جانه کمیشا طرفدار از این بود که یک نوع کثرت‌گرایی در جوامع انسانی قابل تحمل به وجود بیاید او به با این باور بود که به خاطر که تمام این ادیان در صدد رهیافتن به مو حقیقت کامل و اکمل است ولی این دیگاه مورد نقض قرار گرفته که ما میتانیم باز بعدا برازی بپردازن بلی. شکر جناب استاد قبل از اینکه برمباحث بعدی بپردازن جناب استاد آنچه که در مقابل کسراتگرایی قرار از ما باشید بحث داشته باشیم آموزه های اسلامی است در رابطه بین کسراتگرای و آموزه های اسلامی را بحث دیریم از دیدگاه شما آموزه های اسلامی یا مهمترین آموزه های اسلامی در جامعه اسلامی قدام ها هست که باید رعایت شود. خوشبختانه از دید جامعه دین اسلام زمانی که ما رو با مطالعه می کنیم، دین مقدس اسلام و خصوصا اگر از قرآن کریم ما, ما شروع بکنیم، میبینیم که قرآن کتابی است که با حضور و با گستردگی و با پویایی ادیان مختلف و شرایی مختلف در گذشته که انسان ها در مقاطقه مختلف زندگی مکلف بودند که از او شراعی پیروی بکنن پرداختن که ما از این موضوعات در چوقات علم اصول فقه اسلامی بنامه شرایی من قبلنا یاد میکنیم یعنی این خودش نشاندین دی هزی هسته که یک نوه بینش کسرب گرایانه را قرآن بر اصمیت مشنوستن. ولی در نهایت امر چیزی را که باز جامعه مسلمین با او معمور می و جامعه انسانی را به او امر میکنه، او همی است که با وجود شناخت متعدد یا تکثوری که از ادیان در گذشته وجود داشته اسلام همه را معمور می که با یگانه دینی که او دین حق است و دین اسلام است و از هر لحاظ کامل،, کامل است و تمام ابعاد زندگی بشر در خود احتوام میکنه به ای بپردازن و معمول هستن که به این آین مقدس اسلام باورمن باشن به با او عمل بکنن و پیش برن یعنی ما از دیدگاه شناختی تکسرگیرائی در اسلام از دید قرآن مشکل نداریم ولی از دید معمول به ای که ما از کدام سیستم و نظام و شریعت باید پیروی بکنیم طبعا ماموریت خاص مهمی هسته که چون دین اسلام آخرین ادیان سماوی است و کاملترین ادیان سماوی است و مسلمین به این باور من هستند باید ما معمور باشیم که از اون پیروی بکنیم اما خوشبختانه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وقتی که ما شما تاریخ اسلام مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که اسلام کسب هر ایرانی را پذیرفته و خاطر چی پذیرفته؟ به خاطر از که اسلام تنها برای خطه و برای یک سرزمین و برای یک جغرافیا ظهور نکرد و نازل نشد بلکه اسلام منحیث یک دین کامل دینی بوده که برای تمام جامعه انسانی قابلیت تطبیق خود داشته و از امی خاطر جامعه انسانی بالایشان حکم شده که باید دین اسلام را به معرفت بگیرن بشناسند با او باورمن شوند و او ملاک عمل خود قرار بتن چرا؟ من حیث یک آین رستگاری و آینی که میتونه جوامه انسانی به فلاح و رستگاری در این دنیا و هم در اقواه برستاند وقتی که ما تاریخ و سیرت عزت نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیانبر بزرگوار اسلام مطالعه می وقتی که تعامل جامعه سیاسی امو با جوامه موجود در امو اصل و زمان مطالعه می تمامی موضوعات بر ما میرساند که اسلام طرفدار تکثرگرایی است به خاطر که اسلام تنها بر قوم عرب نازل نشده بود اسلام برای تمام جوامه انسانی نازل شده بود و یک چیزم بسیار واضح است که ما به خاطر بحث به همیشه باید از بدگاه دینی مورد بررسی قرار و او دلیل کلیش همی است که انسان ها بسیاری به با این باور بودن یا با این باور هستند که انسان یک موجود سیاسی است بسیار زیاد سیاست مدار است آلان که وقتی که ما تاریخ و پیدایش بشر مرور بکنیم می‌بینیم که اسلام بیشتر از اینکه سیاست مدار بوده باشه دین مدار است و دین مداری در جوام انسانی از اول تا به امروز به اشکال مختلف شرک و بعدها با شکل توحید و به اشکال کشای مختلفی که در نقاط مختلف دنیا ظهور کردن مصفی بودیزم و کانفیسیوس و و غیره ظهور کردن و وجود دارن و در طول تاریخ وجود داشته و وجود خواهند داشت. از این خاطر بود دینی کسب گرایی برای ما و شما بسیار ارزش داره و بسیار جا داره که در این برنامه سر از این مثلا ما و شما پرداختیم یقینا که دوستا و شنونده های برنامه باید دارن که جوامع انسانی در شرایط امروزی بسیار مشکل است که از یک قوم و تبار تشکیل شده باشد در گذاشته ها یک خطرسم میشد یک طرف خطر نمیگفتند دار اسلام است و یک طرف دیگهش خطرسم میکردند می گفتند که این طرف خطر خط دار در کفر است و هر کسی که از دار اسلام به دار کفر می رفت بود که در اونجا شرایط تحفظ خود نمی داشت و اگر از دار کفر هم به دار اسلام می آمد اوجا هم شرایط داشت که امن میگرفت و, می و ایورشدار امن میشد که امروز هم امی مسائل در چوقات دیگی در دنیا انکشاف یافته که در چوقات تعهدات و میساقها و قراردادها و دیگه او خط سرخی که در بین دار اسلام و دار کفر بود وجود ندارد و این معنا که مسلمان ها در تمام نقاط جهان پراغنده هستن و زندگی میکنن و بالمخابل روابط یا امو گستردگی روابط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در سطح دنیا امروز تمام جوامه انسانی رو واداشته که با هم در داد سطد و تعاملات قرار داشته باشند از این خاطر ما در هر جامعهی که زندگی می‌کنیم ناگذیر استیم که با تکسرگیرائی عجین باشیم یعنی با سر و کار داشته باشیم و ما یک دید کاملاً تحمل گرایانه در برابر از این مطلب داشته باشه با عنوان مثال مسلمان زمانه که به یک مریض میشه نیازمند تداوی و هست تلاش میکنه بهترین تداوی و مداوا را به دست بیاره سفر میکنه به یک کشور یا به یک جایی که او کشور یک کشور اسلامی نیست ولی چون در اونجا نیازمند تداوی است، امی اعتماد میکنه حیات و زندگی خود در گروه یک, یک شفاخانه و مثلا یک, یک،, یک،, یک نهاد صحی قرار می و اونجا به میشه شود و دوباره مثلا با وطن خود عودت می کند. است که در دنیا این روز در این تعامل با غیر مسلمان ها قرار داشته باش. در جامعه خود اگر اقلیت های غیر از دین اسلام مثلا در افغانستان برادرهای اعلی هنود یا سگ و شما داشتیم، بسیاری ضروریات اقتصادی ما را این مردم مرفوع می کردن. با کسب کار و حرفه‌ای که نا داشتن یک نقش را در اقتصاد بازی می‌کردند بنا من است یک جامعه اسلامی ما نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم که اون‌ها را نفی بکنیم ما این تکثرگرایی را با تحملش داشته باشیم که در چوکات عموم موازین پذیرفته شده و قانونی و شرعی که در آن جغرافیا در طی صدها سال وجود داشته با های دینی دیگه هم در تعامل قرار داشته باشیم. از این خاطر است که یک اصطلاح هم در علوم اقتصادی با وجود آمده و میگن که موضوعات مارکت و بازار دین و مذهب نمیشناسه زمانی که مثلا همین شخصی که مریض شروع تداوی خدا در بیرون کشور یا داخل کشور انجام داد وقتی که به دنبال دریافت دوای خود بواسطه نسخه دکتر است او پرسان نمیکنه که این دوا را مسلمان ساخته یا غیر مسلمان و او اعتماد میکنه به همو دوایی که از یک کمپنی یا یک یک حکیم یا یک دکتر تولدش را برای تداوی ازو به کار می‌برد. با این ماناکه ما در اثر تح... ت... تکثرگرایی در حقیقت را... رابطی اجتماعی و اقتصادی خود را در اجتماع دوام میتیم در موجودیت سایر کسانی که اونا پیروای ادیان دیگه هستند، پیروان باورهای دیگه هستند و یا برای روای ادیان سوماوی هست هستند ترتیب از دیدگاه اسلامی خو از سوال گنا از شما از مدارات و تحمل یادآور کردیم و از جایگاه این ارزش ها که ارزش مدارا و تحمل ما میخوایم سوال میگوم از طریفیم که مدارا و تحمل از نگاه اسلام و کجدگرای چه جای داره دارد و چیگو گونه از ها در راستای گذار از خشونت به سوی یک جامعه سالم بهره برداری کنیم؟ خب ببینیم که هرگاه در یک جامعه تحمل و مدارا میباشه این تحمل و مدارا هم در ادبیات و هم در دستاتی دینی و اسلامی برای ما شما یک الگوی از و برای ما شما یک راهنمود است در صورتی که در جامعه انسانی مدارا و تحمل نباشد و حل منازعات از طریق گفتگو صورت نگیرد طبیعی است که تنوع و جنجال و کشمکش میان مردم در اجتماع به وجود می و در ای تنازو و کشمکش, کشمکش باید خط نهایی باش، استیج و درجه نهایی باش. در قدمهای های اول فقط مدارا هست از خودگذری هست و احترام به حقوق دیگر هست دیالوگ و گفتمان که در اثر درک جامعی از, از،, از مدارا و عرضش تحمل به وجود آید، این راه را باز می کند بر یک زندگی مسالمت برای بر یک زندگی سلحامیست دستاتیر اسلام همی است که هر زمانی که مخالفینی که در اسلام با اسلام در, در, در مقابله بودن ارگاه اونا آغوشت خدا باز بکنن یا تمایل نشان به برای صلح و برای گفتمان باید جانب مقابل هم آغوش خدا باز بکنن و دامن گفتگو دیالوگ باز کنن این خودش ناشی ازی هست که اسلام با تصامح و مدارا ما شما را معمور میکنن و در اثر اینمی تحمل است که کسردگیری هم تحمل میشه در اجتماع و جوامع انسانی در موجودیت یک صلح دائمی با پویایی خود به طرف رشو شغوفایی خود پیش میدن تشکر جناب استاد از صلح اجتماعی یادآوری کرد اجتماع صلح اجتماعی در نگاه اسلام و کسردگیری در چه جایگاهی است این ارزش اجتماعی را چیگونه اسلام و کسرتگرایی پاس میدارن و در راستای ترویج و نهاده نشدن آن گام میوردارن و تلاش میتونن وزیفه چی چیست؟ خصوص وزیفه شهروندان افغانستان در راستای صلح اجتماعی با نگاه اسلامی و کسرتگرایان خوب خوشبختانه که دساطیر دین مقدس اسلام همگیش جامعه انسانی به طرف صلح و به طرف تحمل و به طرف تعاون و تساند با همدیگر راهنمایی رهنمایی و تعاون و علالبر و تقوی آیای مبارکه ای قرآن با امی ترتیب شنیدن اقوال مختلف فبشر عباداللزین یستمیعون القول و یتبیعون تمام ارشادات قرآنی برای ما میکنه که با هم تعاون و همکاری بکنیم اقوال مختلف دیدگاه های مختلف بشنویم ولی امو بهترین اقوالا که جامع‌ترین اقوال باشه مناسبترین اقوال باشه برای عمل کرد با او ما و شما عمل بکنه دستور قرآن بسیار واضح است صلح اجتماعی یعنی یک هم فضای همزیستی همزیستی آمید بین تمام اهاد جامعه اهاد جامعه یعنی افراد جامعه متشکل از افرادی هستند که با زبانهای مختلف صحبت می‌کنند با تبارها و اقوام مختلف وابستگی دارند از لحاظ نسب و از لحاظ قومیت با علایق و دیدگاه های مختلف سیاسی ممکنن در یک جامعه حضور داشته باشند ممکن است سلیقه ها و دیدگاه های مختلف یا متفاوت فرهنگی با همدیگر داشته باشند از لحاظ مقام و پرستیج اقتصادی امکان دارند که مردمان باشن که در طبقات اقتصادی پایین تر متوسط یا بالا قرار داشته باشن در تمامی آلات و احوال ما و شما یک جامعی یک دست امروز در دنیا نداریم که همگیش پولدار باشن همگی از یک قوم تبار باشن و همگی از حتما از یک زبان پیروی بکنند. ما در جامعی امروزی باینامی با تکسرگیرائی به با اصطلاح درگیر استیم در هر جغرافیایی که بریم و خوشبختانه که کشور ما هم امی و امی مقبولی کستگیرائی خود داره که اقوام مختلف، زبانهای مختلف، طبقات مختلف اجتماعی، از دهات، از شهرها، بینشای مختلف فرهنگی همگی در یک جغرافیا با هم تایی هزاران سال به شکل بسیار دوستانه، برادروار، مسالمت آمیز. با همکاری و تعاون بر سر بردن و مشکلاتی که در مقاطع مختلف با وجود آمده بعد از یک چندی مشکلات هم رفع شد و دوباره عمو روحیه اجتماعی و همکاری و تسانوت در بینشان حاکم شد بنائن چون دستورات اسلام دستور است که مسلمان ها در بین خود بسیار با هم مؤدب داشته باشند همدیگر خدا به مسائل معروف و به مسائل خوب امر بکنن و همکاری داشته باشند در مسائل معروف، و در مسائل خوب، و در مسائل خیر، و در مسائلی که او پسندیدن نیست، هم دیگر خدا منع میکنند، هم دیگر خدا نهی میکنند. و باعث ترتیب به طرف یک اجتماعی سالم پیش می‌رند. به این روحی صلح اجتماعی اسلام از اولم طرفدارش بوده. خوشبختانه تجربیات افغانستان آمیزه نشان داده که مردم طرفداری همچون یک فضایی است که در اونجا کار پیدا شو باشند. زندگی بهتر داشته باشند تعلیم و تحصیلی بیشتر برشان زمینه مساعد شود و در بین سایر ملل اسلامی بدروخشن جایگاه خدا پیدا کنند دیگر خوشبختانه که روحی اسلام در این زمینه بسیار مثبت است سپاس جنابستاد چون چه شما در موضوع جامعه افغانستان اشاره کردیم که افغانستان یک جامعه کثرتگرا هست با اقوام متعدد و فرهنگ‌های مختلف چون این جامعه که ماهیت کسرتگرایا نداره یا ماهیت کسرتگرا داره و از توی هم مکتب کسرتگرایی برمبنای تعقل و تفکر و تعقل و تفکر انسانی بناشده است و از طرف دیگم قرآن و اسلام و تفکر و تعقل تأکید می کنند نظر شما چگونه از عقل و تفکر و عقل کاربردی برای ارتقاع سطح زندگی و رفاه در جامعه افغانستان برابر دارید. بی که در پهلوی ازی که اسلام دینی است که مبنای خدا از وحی الهی گرفته و تمام دستوراتش منشأش قرآن کریم و سنت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و است که آن هم به عنوان وحی خفی نزد ما مسلمانها رسمیت داره و در مراحل بعدی ما شما از اشتهادات مشتهدین در چوقات قیاس و در چوقات اجماع و در چوکات مسالح مرسله و استحصان و سایر منابع شرعی بشمول اهداف کلی شریعت که مقاصد, مقاصد شریعت و مسلحت هایی است که شریعت به او ترکیز داشته در این چوقات ما و شما می‌بینیم اسلام و دین و ارزش‌های های اسلامی خود. در پالوی ای گرایی و, و برسنیت شناختن اقل و که خداون انسان را با ای وسیله بسیار عالی با ای وسیله بسیار کامل و جامع مزیم ساخته و آراسته ساخته و انسان ها مکلف هستند که در زندگی اجتماعیشان، در زندگی علمیشان، در زندگی فرهنگیشان، در زندگی اقتصادیشان از دستورات عقل هم ره پیروی بکنن دیگه این بسیار یک جای مسارت خوشی است برای جوامع اسلامی خاطر از اینکه که در عدیان گذاشته برای عقل جایگاه رسمی از لحاظ دین وجود نداشته مثلا در آین ایساویت و گونه بوده که اونا به با این باور بودن که هر آن چیزی که در کتاب مقدسشان آمده او برشان قابل عمل کرده است و چیزی که در اون آمده با عقل خود نمیتانند چیز را اونا درک بکنند و چیز را اونا بپذیرن و با او عمل کنند از همین خاطر بود که در دوران قرون وسطا صدها سال یک هزار سال دوام که قرون وسطا. در اونا صدها سال فکر می که از عقل خود استفاده کنند ولی اجازه از او براشان داده نمیشون هیچ وقت اونا نتانستن که علوم عقلی را بکنند مگر اینکه بعدا کسانی از دامن خود اونو امو مذهب و دینشان بالا شد و مسائل اقلگرائی رو مطرح کردن و اونا ثابت کردند که تنها با امو رویکرد دینی اونا نمیتانستن پیش برند. اما جای بسیار شکر است که در اسلام عقل منحیث یک وسیله که قادر است موضوعات درک بکنه بر اسمیت شناخته شده و قرآن کریم و و مرات انسان مأمور میکنه که تعقل بکنه، تدبر بکنه. گرچه مایه های ها تکثر گرایی در غرب ما از جانب پیشتر یاد کردیم، مبتنی بر یافته ها و مبتنی بر استدلالات و مکتب حقوق طبیعی یا عقل گرایی است. ولی خوشبختانه که چون اسلام هم عقل گرایی را به رسمت میشناسه و قواعد فقهی در زمین وجود داره که میگه هر چیز را که شریعت به قائل است، عقل به او قائل است، وارد شد که عقل به او قائل است، شریعت به او قائل است، و, و, و, و جایگاه وحی در صدر همه منابع قرار داده که تابن عقل انسان با کنه دستوراتی که با اساس وحی الهی صادر شده ایزگاهی نمی در اونجا بدون شک و شبهه ما مکلف به پذیرفتن از اوستیم و در عقل انسانی خطاها و میزان خطا وجود دارد، ولی با آن هم عقل انسان در بس موارد قادر بایی است که جوامه انسانی را یاری برسانه و امروز با کمک همین عقل انسانی است که نظام های در جهان، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد ارتباطات، در عباد جامعشناسی به وجود آمده که دنیا حتی مکلفیت دارد که از همون موازین و موازیقی که تواسط گرایی به وجود آمده پیروی بکنن. نمونه مثالش، مسائلی مسائل است که در قراردادهای بین و امروز در سطح دنیا وجود داره و کشورها مکلف هستن که از این تاهادات بین مللی پیروی بکنن و جای خمسرت همی است که بسیاری موارد ره که در این قراردادهای بین مللی آمده وقتی که شما ارزیابی میکنیم با اساسات حقوقی در ادیان مختلف و خصوصاً اسلام با هم بسیار همخانی دارن شاید موضوع از بحث برنامه مبادور باشه ولی گفت اساسی در این جا است که تحمل گرایی، که در تفاوت عقل به او در در غرب پژوهش شده یا در غرب به او تاکید شده در اسلام جایگاه خود را ام در چارچوبات وحی الهی قرآن کریم سنت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و الیهم برخورد آن حضرت صلی الله علیه و با تبارها با ملت ها با ملتها ها با ادیان دیگه با اصناف دیگه در بین جامعه ای برای ما نشان می ده که خوشبختا نه اسلام و ایزان داره و ما و شما شکرگزاری ازی هستیم که اسلام چونین موازین از قبل بر ما شما دستور دادن تشکر جنابستاد موزات ارزشمند را اشاره کردین در ادامه به اسلام میخوایم سوال مطرح کردن که شما در میان مباحثان مطرح کردن که نگاه غیر دینی و نگاه کسطدگره نسبت به مارکت و بازار در جامعه امروز وجود دارد. این نگاه کسرتگره نسبت به مارکد و بازار در اسلام چی جایگاهی داره آیا در اسلام قابل قبول هست در جامعه اسلامی مستقبانستان نگاه غیردینی به مارکد و بازار به, نگاه بر... به نظر شما تازگاری با های اسلامی داره بیسار سوال خوب را شما مطرح کردین و یه خوب است که برای شنونده های ما این موضوع روشن باشه چرا بساری وقتا ما روان استیم به یک مسیر و به یک راه و به بعضی زرافت ها و باریکی هایی که در امو مسیر طی می کنیم متوجه نمی باشیم و اگر رسانه ای را بیان می کند، ما را بیشتر به اون متوجه می سست این نکته ای که شما بیان کردین که آیا دیدگاه ای که در مارکت وجود داره با اسلام همخانی داره بله بخاطر از اینکه از صدر اسلام زمان که شما تاریخ مطالعه می کنین می که مسلمان ها در دادستود و در روابط اقتصادی با سایر ملل قرار داشتند و حتی موضوعات را در دادستود و معاملات اقتصادی در سطح جهان ابدا کردند. یعنی ابدا که میگیم یعنی چیزی که از قبل وجود نداشت. اینا ابدا کردن که در نظام اقتصادی جهانی تا با امروز او جایگاه خاصه داره. با عنوان مثال حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم در, در جوانی خود که با تجارت پرداختن تجارتشان البته با سرزمین شام وقتی وقت سوریه امروزی صورت گرفت و زوجه متحریشان حضرت بی بی خدیجه کلبرى رضی الله تعالی عنها که سرمایه خود در اختیار آن حضرت صلی الله علیه و سلم قرار دادن البته ای دوران پیش از بعثتشان بود و طبیعی است که ما شما به یکینی کامل داریم که حضرت صلی الله علیه و سلم از زمانی که متولد شدن و تا زمانی که از این جهان رحلت کردند یک شخصیت گرانمایی بودن که تمام طبیعت و فطرت از اونا به فطرت و طبیعت آفردش رو بود که باید نبی آخر زمان می بودن و از همه خطاها و گناه ها مسئون بودن و, و یک الگو و نمونه خاص برای تمام جوامه بشریت بودن اونا بی تجارت و دادوستد به خود با غیر مسلمان ها برخوردند بعدا هم کاروانهای تجارتی مسلمان ها و دادوستد مسلمان ها تنها با مسلمان ها نبود بلکه مسلمان ها در شرق و غرب هم در سرزمین هایی که تحت تصرف روم شرقی بود و هم در سرزمین هایی که تحت تصرف امپراتوری افارسی ها بود و در سایر نقاط جهان بعدا که سرزمین های اسلامی وسعت پیدا کرد با دادوستد و تجارت دوام دادند در اثر امید ها بود که عقد مزاربت ما و شما میبینیم که در, در شریعت اسلامی که قبلا سابقه نداشت با وجود آمد. در اثر امید ها بود که ما مسئله حواله را که امروز چقدر ما شما میبینیم که در جوامه مختلف از او استفاده میشه خصوصا در افغانستان و ساری که اسلامی مسلمان ها ایره ابدا کردن، اموال ارسال میکردن و پول خدا حواله میکردن و ایتا به امروز یک جایگاه بسیار اساسی در دارستتت های اقتصادی به وجود آورده و به امی ترپید ای دادستتت ها با جامعه غیر اسلامی باعث از این نمیشد که تجار غیر مسلمان در سرزمین های اسلامی تجارت مکنند اونا هم به اساس امو قول و قرارها و امنامه هایی که می‌داشتند در سرزمین های اسلامی یا شخصا وارد میشدن تجارت میکردن یا امتعا و تجارتشانه زمین زمینهای اسلامی از طریق هایشان جاری میسافتن از این خاطر است که امروز زمانی که یک فرد مسلمان به مارکت میره به دواخانه میره دوا میخره می فرسان نمیکنه که این دوا ساخت مسلمان است یا ساخت غیر مسلمان به خاطر از اینکه مارکت از خود ضوابط و قواعدی داره که بین مسلمان و غیر مسلمان او قابل تبیق است یعنی کیفیت امتع عدم غبن در معاملات که غب نفایش یا غب در معاملات صورت نگیره قول و قرارهایی که می‌گذارند در چوکات خیارات که مسلمان ها در عقد خود دارن خیار عید، خیار شرط، خیار رویت اینا همه چیزایی هستن که به تدریج در جامعه اسلامی توسط فقاهای کرام بر اسمه شناخته شدن و دامنی معاملات هم با مسلمان و هم با غیر مسلمان موسعد دارن از این خاطر خوشبختانه که دیدگاه شریعت اسلامی در این زمینه بسیار وسیح هستند و راه را در برینکشاف اقتصادی باز کردند تشکر جنابستاد موضوعات بسیار مهم و اساسی را در راستای دادوستاد و بازارگانی و تجارت مطرح کردیم. اما یک موضوعی که در کنار این موضوعات مطرح میشه بانگداری هست شما میدونید که این روز در حال جهانی شدن قرار دارین و دنیا در حال کوچک شدن است. دنیا ارتباطات وجود دارن و با استفاده از تکنولوژی رابطه ها بسیار نزدیکتر و فرداتر میشه در بخشی بانکداری نگاه اسلام و با بانداری چیگونه است و چیگونه بانکداری متعارف سازدار بسازیم با اتصاد با اسلامی که هم منافع مسلمان ها در آن نهفته باشد به خصوص شعروندان افغانستان و هم سازگاری با اصول و پرنسیب و دکتورین اصدامی داشته باشد خب یک پرنسیب بسیار کلی ما شما داریم در فقه اسلامی و خوب است که شنونده های ما هم به این نقطه متوجه باشند که هر آن چیزی که در شریعت منع نشده باشد او جواز دارد یعنی او مباه است انسان میتونه که او کار بکنه یا نکنه اگر یک چیزی در شریعت منع نشده باشد برای مسلمان جواز نیسته که او کار او عملا انجام بده خاطر که قایده کلیمی استه که میگه النهیو للتحریم و الامرو للوجوبه ار جایی که نهی باشه من نکرده باشه شدیت تحریم است ما انجام نمیتیم و که یک مساله با مسلمان امرش شده باشه ما مکلفه رو انجام بدهیم مثل عدای نماز و سائر فرائز و وجائبه که مسلمان داره. اما در قسمت یک موضوعی که شریعت به او ایچ به اصطلاح تچ نکرده تماس نگرفته برای حرمت و عدم حرمت از او چیزی نگفته ما من حیث مسلمان میتونیم عملا انجام بتیم یا انجام نتیم از این خاطر ما به زبان بسیار عامیانه و عام صحبت میکنیم که چون های ما در هر سطح هستن و آم فهم باشه ا این ای مسائل آکادمیک ایجاب میکنه که بسیار با لفظ و قلم آدم صحبت بکنه ولی چون شنونده ها و مخاطبین ما عماتنای عزیز ما هستند در هم سطوح کسانی که با این مسائل آشنا هستند و نو تکرار است و کسایی که تازه میشنون ممکن برشان جالب باشه ما به زبان ساده صحبت میکنیم و این بسیار نکته مهم است که اگر چیزی برای ما شد انجام میدید امر نشد، نه اشورا باشیم انجام نمیدیم اما یک موضوع است که شریعت به او تماس نگرفت بانگ دارید که ما شما می بینیم که بی در صدر اسلام من فیضی که ما و شما افراد معتمد داشتیم که اونا خزاندار بودند یا امو اموال غنیمت را که در اثر جهاد یا در اثر جماعوری مالیات حکومت اسلامی جمع شد نگهداری داری میکردن افراد قابل اعتبار بودن که آیستایست باز قلم اسلامی زیاد شد و باز بلاخره دفتر و دیوان و وزیر و حاجب و دربان گپا با وجود آمد و تشکیلات مسلمان ها تشریفاتی شد تا با امروز متصفانه در, در, در, در تمام اینمی مراحل باید ما متوجه ازید باشیم که یک سلسل موضوعات را که مسلمان ها تانستن ادعا بکنن ایجاد بکنن شاید موضوعات بوده باشه در او از زمان مطابق همو شرایط ولی بعدها که مثلا مسلمان ها بسیستمای بانگداری یا سازمان های بینمللی مختلف ساختارهای مختلفه جغرافیایی که هر کشور دارد مثلا دادن شناسنامه یا پاسپورت قراردادهای تجارتی، تعاملات تجارتی بین المللی که امروز وجود دارد ترانزیت کالاها و غیره اینا چیزایی هستند که فسانها به شکل پیشرفته‌تر ظهور کرده و اسلام در این زمینه در صدر اسلام چیزی نداره ما بونداری نگاش ولی امروز که وجود داره ما اساسات مایه های عزیز در اسلام ببینیم که کدام خطوط قرمز یا سرخ در این زمینه وجود داره و تا چه حد مسلمان ها میتونن از فرصت استفاده کنن. هر چیزی که زندگی اجتماعی و اقتصادی مسلمان ها را ساده بسازه کاربارشان را تسهیل بکنه چیز خوب است ولی دستورات اخلاقی شریعت هم باید در نظر بگیریم چرا نظام اقتصادی اسلامی یک نظام مبتنی بر اخلاقیات هست یعنی ما گفتن نمیتونیم که ما یک نظام اقتصادی بسیار خالص اسلامی داره بلکه ما دستورات اخلاقی داریم که غبن نکنیم مثلا غبن فاحش نکنیم در معاملات خود به این که در قسمت معاملات خود ما مثلا سود نگیریم سود نخوریم سود خوردن حرام است در اسلام و اگر یک سیستم بانکداری مبتنی بر سودخوری به وجود بیاید که بدون بدون به اصطلاح ایواست یک زیادتی را در پول بر انسان به وجود بیاره چرا شما زمانه که سود تعریف می‌کنین یک زیادت بدون ایواز است. است. شما افغانی با کسب بتین و باز بوگین که مایی 10 افغانی از شما میگیرم، اید افغانی در بدل چی میگیرین؟ یه سود است. بنا شریعت اینه منع قرار داده. ولی راههایی به وجود داره که بانکداری اسلامی میتونه او را عملی بکنه. مثلا عقد مزاربته که پیشتر ما و شما, و شما یاد کردیم، یکی از راه‌های است که امروزه بانک‌های اسلامی میخوان که از او استفاده بکنن. پول سرمایه از شخصی است که سرمایه داره و او را بره بانک تسلیم میکنه و بانک از این پول میگیره تجارت میکنه اقلام را وارد میکنه یا در یک بخش سرمایه گذاری میکنه و از مفاد ثابت و حقیقی امو پول سرمایه گذاری شده برای کسی که صاحب پول است برای کسی که صاحب سرمایه است بره از او حقشم در برابر یک تفاهم یا, یا توافقی که مطابق شرایطی که در عقد مزاربت شرعی آمده، البته یک سلسله شرایط مشخص خود داره که در این برنامه شاید جای بحث نباشه. با این اساس بانکداری اسلامی راه راهی خوده داره، شرایط خود داره. ولی اگر با, با اساس بانکداری که فعلا در کشورهای دیگر رایج است، ما ایره برای مسلمان ها ترویج بکنیم یا یا از روی ذحوبات بکنیم، شاید چالش‌های خود داشته باشه که از نقطه نظر قواعد فقهی اسلامی او را مسلمان ها نتذیرند یا قابل قبول برشان نباشند ولی راه را در چوقات فقه اسلامی داره مسلحق مزاربت که امروز بانک های اسلامی به اون میپردازند و در خلاصه کلامی که هر چیزی که بتواند تسهیل بکنند سهولت به وجود بیاورد بر دادست و و رشد اقتصادی جوامه اسلامی چیزی خوب است مسلمان ها از استفاده کنن امروز در کشورهای اسلامی اقتصادهای بسیار بزرگ شکل گرفته مثلا کشور امارات متحده کشور قطر کشور عربستان سعودی کشور مالیزیا کشور اندونیزیا کشورهای همسایه ما در ایران و پاکستان و دیگه کشورها در آسیای میانه هر کدام از اینا البته در مسائل اقتصادی و مارکت قوانین و قوائد خود دارند که بسیاری از قوانین و قوائد از فقه اسلامی گرفتن نشدن اما کشورهایی هستند که اونا نابوزیر هستند به فقه اسلامی تمسک بکنن و راه های خدا به اساس دستورات شرعی عملی کنن سفاست جناب بینان آخرین سوال و جمبندی بحث امروز ماهیت متکستر جامعه افغانستان که در نظر بگیریم چیونه برای نهاد نستازی فرهنگ، کیسازگاری نیان گرایی و اصول اسلامی از یک ماهیت متکستر استفاده محصر نمایم در راستای حل منازاد گزارش و گزارش از به سوی یک جانه مرفق و سرگامی زرفانستان تشکر یک دستور بسیار پاته و یک رهنمود بسیار کلی قرآن کریم است که اینم المؤمنون اخوتون جز این نیست که مسلمانان با هم برادر این دستور کامل قرآن ما هر لحظه ملاک عمل خود قرار بتیم مسلمان برادر مسلمان است و الحمدلله جامعه اسلامی افغانستان که یک جامعه متکسر است اقوام مختلف. اقوام مختلف در او وجود داشته و وجود خواهند داشت. اینا همه گی از لحاظ آئین و پیروی از دین به یک دین مبارک اسلام اینا مشرف هستند از این خاطر امور و و خوت که در انگلیسی روحی, روحی برادر خود میگن حتی در اعلامیه جهانی و فوق بشر از زیاد شدن. که انسان ها همگی با هم برارن با هم براابند، بین با این روحی معت ما, ما با همدیگی خود ببینیم. این می برای ما یک دستوری کلان باشه او لحظه که ما خدای نخواسته و یک برادر خود را با او یک منازعه او مقابله داشته باشیم امیر مسلم مجسم بسازیم در ذهن خود که ما با هم برادر هستیم. برادر با برادر خود هر که با هر آنچهره که به خود روام می داره، به برادر دیگه خود روابه داره اگر ما تعلیم بر خود می داریم به برادر دیگه خود روابه داریم اگر ما زندگی مرافه برای خود می داریم به یک برادر دیگه خود هم روابه داریم در این صورت مشکلات ما حل شد از این خاطر در جامعه کثرت گرای افغانستان که الحمدلله همه مانند گل‌های و میوه‌های یک باغ بسیار بزرگ هستند و و اینا با هم بتونن با هم با روحی مسالمت‌آمیز زندگی بکنن دیگه این بسیار یک فضیلت بزرگی برای مردم ما بود و اخ فضلات بزرگ اصل الحمدلله عل الرغم مشکلات و چالش هایی که در مقاطع خاص زمانی به وجود آمده یا به وجود می آید در طول تاریخ افغانستانی ها و افغان ها می که با درک این روحی کلی اخووت اسلامی دوباره گرده هم جمع شوند و دوباره با روحی تسامح و مدارا برای پیشرفت و آینده کشورشان منایی یک جغرافیایی که باید یک جغرافیای سربلند و یک جغرافیای متحد و یکپارچه باشه و حقوق انسانی و حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هر یک از افراد جامعه در او محفوظ باقی بماند با هم دیگر متحد بماند پیش بران خیر الخير جناب استاد با ست محمد ابوالاحرار رامزپور مؤسس جمعیت مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو استاد فنتون و پژوهشگر ارشد در امور حقوق بشر و آموزه اسلامی از حضور ارزشمند و عالمانه شما در برنامه کسرگرایی و افتانستان یک جانس تپاس جنابستان تشکر از شما و از مخاطبین محتم همچنان دین شنویندگان گیرامی از همراهی و حضور ازشمند شما تا پایان برنامه امروز سپاس گذاریم تا برنامه از شما را به خداونده متعال بستاریم بدروت